باز هم یک نقطه زف از دوستم گرفتن. میدونید دونید استاد حتماین چی بوده؟ این نقطه زف که چرا نام خودش رو پنهان کرد از سهراب. و گویا این شیده تورانیان بوده که نام رو پنهان میکرده. کردن. ما که ما اینو ب... بیاییم ویرون از این داستان و به تفسیرش می فرگزیم. سپاه سیستان از طرف کابوس مهمور میشه که با سپاه سهرابیان صحرا... سماگانیان مبارزه کنه. و این ها هم دیگر نمیشنستن. اونو آراهی داستان همه. میبینی در اون جنگ هیچ هیچ سپاهی از هیچ جا دیگه کشته نشد. یعنی نه از گردستان نه از آزبایجان نه لرستان، نه از خودستان یا از هیچ جا. نه برد بین سیستانیان و سمنگانیان یا انجام. نمیشناختن دیگر. اینجا بلحقیقت میشه گفت انگوش کداشت رو کار سهرابیان که اینا وقتی میخوان بیان چرا اصلا با سپاه دشمن باید بیان بیان با اوج باز به سوید سیستان بگن با سیستانی هستیم می‌خوام بیان پیش پدرانم. این خیانت محسوب میشه. در هر صورت شد دیگه. یه چیزی که شده بود تموم شده خب دیگه. حالا پس چرا استاد فردوسی در انتهای همین داستان رستم و سهراب؟ خواهش میکنم اگه امزوار... عبدودن؟ خب, عبدودن؟ خب، عبدودن؟ اگه افاضه به با من بگید که این absurde است من دیگه این چه استفاده نمی‌کنم. یکی داستان از پر آب absurde این اینم absurde است. اجازه سینجار. من امیدوارم که آقای هدایتی گرفتاریشون با طرفش مادر و مادرشون بهبود پیدا ولی اگر باز بار دیگه افتخار این داشتم که در خدمت چون باشم انتظار دارم که الهاویار رو با... من خونده باشم رو دیگه خب خیلی ها استاد شاهنامه شما رو نخوندن این برنامه هم الان دوستانی که پای گیرنده ها نشستان شاید اصلا فرصت نکنن شاهنامه رو بخونن ایرانی فرصت روشن. نکنه نداره ایرانی میبایسه که, که کارنامه عزت و شرف و فرهنگ و دانش و خود از بخونه هیچ ضرر باهانی پذیرفته نیست ولی صحبت های شما میتونه این خلأ تو حدودی پر کنه بو میگم هم. یعنی همین اشاره میشه به این ادبیاتی که شما میفرمایید الهاقیه. آه. حالا شاید البته هستند بعضی کسانی که مثلا نظری دیگه ای داشته باشن ممکن میتونه... نیست نظر, خودم نظر شما بله میگم این دیکتاتوری توی ساحات ادبیات وجود نداره که من اینو میگم الا جز این نیست حال ساعت مطن ادبی ساحت تعویله ساحت تعبیر، حتی آدم های معمولی عادی مثل من هم این حق داریم که شاهنما رو به سلیقه خودمون مثلا از نظر ای تفسیر کنیم مثلا میگیم سهرابش کار بدی کرد روستان هم کار بدی کرد چرا مثلا کاش گفته بود بابا من رستمم این اتفاق نمیفتد میدونید یه آرمانه یه عشق توی این اینکه داستان میشه عوض بشه میشد اتفاق دیگه ای بیفته که البته توش پر از به حال نکته های اخلاقیه و اما پیامک هایی که استاد اومدن اومده اینجا یکی ی... بله با درود فراوان البته نه اسمشون رو گفتن نگفتن از کجا این پیامک رو فرستادن راه ارتباط الکترونیکی با جناب دکتر جنیدی چیست ما برنامه یک پایگاه بنیاد نیشابور داشتیم که متاسفانه مدتی بسته شده و فرزندان بنیاد نیشابور مشغولاً دارن درست میکنن شاید ده روز دیگه چیز بشه این راه انداخته دیگه بشه www بنیاد بنیاد نیشابور داد ir البته دات کام بود دات کام رو معلوم کی گرفته از دست ما مثل کسانی هستن که این کاره میکنه که بعدن اینو بفوشن به پول زیاد و اینها ولی ما دات یاری از دان تا یه ده روزی که این باز میشه میتونیم به بنیاد نشه اگر نه فریدون جانهی هم هست که خب استاد شما خودتون ویبلاغی سایتی من شخصی من میدونیم به که کامپیوتر رو روشن نمی کنم هیچ وقت بلی فرزندان بنیاد روشن می کنم و به من میدن اینا رو همون فریدون جنیدی بعد فریدون با اف آر ای وای دی او چونه بله. باز, باز وای داره بعد یه چیزی داره هات میل یه چیزی دات, دات, دات, دات, دات, دات, دات کام که ماده ماده ماده. ماده. ماده. من, در من, در من, در من تا دف... من برای همون شکلی دیگه... که میارم یه ای ای ایم داره آره بعدش همیشه یک داره یه چیزی داره حسیدی دیگه میارم میکنم بعد از دوستی از نجفآباد سپاهان نمیشن سپاهان اگر بگیم خیلی بهش سپاهان بود با سلام آیا نام گابیان یا گی یا شاهنامه ما نه نوشته گابیان نه, نوشته گابی. نه. و یه دوستی هم بدون اسم و آدرس نوشتن که پس سیدی های برنامه که منتشه این چیزیست که من چندین بار گفتم و آقای به اینجا رسیدی که آقای هدادی میگه من هم گفتم به من ندادن من نمی‌دونم اگر این برنامه واقعا خوبه و اینطور استقبال میشه از طرف مردم ایران نه خب چرا سیدی هیت در اختیار مردم قرار نگیره؟ این واقعا پرسیشه خیلی خیلی بنیغیه دیر و زود داره سخت و سوز نداره مطمئن باشید ده که ده این سیدی ها منتشر خواهد شد شو... حتما منتشر خواهد شد دوست دیگری نوشتن با سلام و درود در استاد عرجمن دکتر جونیدی لطفا توضیح دهید که آیا میان نام باستانی سردمین آزربایجان آتور پاتکان بله و توران زمین ارتباط وجود داره؟ هیچ ارتباط نداره. توران حدود 4,020 سال پیش در یه سرمای عظیمی که رخداد از بین رفت شمال ایران هم بر اون سرما تلف شد و تورانیا در البته ما در تورانی ایران میگیم تو ایریه تو ایریه نه پسرمو چون اونا پرزند تور و فریدون بودن دیگه به این صورت پسرموی ما میشن آترپادکان یکی از بحش های عمده ایران بوده و هزارها اینا تورپادکان جایگاه که کده آزرگوشست بوده قبلگاه بوده و اینا همه ایرانی هستند همه فرهنگ یعنی این طوریست که زبان دازه اومده بانده بانده. بهترین طریقات هم در این زمینه استاد یحیا زخا کرده و استاد فیروز منصوری که خودش اهل سلمانس اینا رو من پشناهت میکنم بخونید و ببینید که آذربایجان با توران هیچ ارتباط نداره همین دوست عزیز یک پرسش دیگه هم ترکرد همچنین شهر دهید البته در مورد دو نامه آیا شباهت نامهای فروتیش یا فروتیه اینجوری نوشتن پادشاه دوم سرزمین ماد آتوپاکان و نام افراسیاب این شباهت معنی داره نه نه افراسیاب پرنگ رسایم بوده بله؟ در عویستا یعنی البته استاد دوانشاد پردابودونو حراس اف... افکننده معنی کرده ولی حالا ما بعد از گذشت تقریبا هشتا سال میبینیم که فرانک رستگین کسی که به قطع سر و دست و پاو اینها فرمان میده و گشتار ام... میکنه در حالی که فرانگ اصلا ارتیش به هیچ ارتباط نداره درست دوست دیگه هم سامیمانه و سادقاته نوشتن هر چی فکر کردم نمیدونستم چی بینید بر از درود بر فرزند ایران فریدون جنیدی بود شاد باش ایوب اقبالی از کرمانشاه کرمانشون کرمان نوشتنم کرمانچان نوشتن. من نه نونم نداره کرمانشاه کرمان... آقای کرمان؟ اقبالی نون نداره کرمانشاه کدک کرمانشان کد کر... کرمانشان بله شون پس من دیگه در کاشان هم هست در لوسان هم هست در شوندس پیشوان هم بده پیش فصوت... یعنی جورگو بله یعنی شام... شان که ما میگید نه نه شان که عربیه شان شد از ایران رفته برد نه شان آخه چیز دیگه این جایگاهه در جایگاه نمتونه شان باشه در هر صورت آمد. اگرم رفته جنبه. من ندارم. بله مکان ندارم بله شان پس من کرماشان. کرماشان. کرماشان من پیشنات میکنم به ایشون یک پژوهش خیلی دامنه دار من کردم بیس خورده سال پیش برای کرمان پجورشی در نام کرمان که زمین اون وقت تمام این نام ها بررسی شده از عبستو و پهلاوی شانم از نام های من روشن کردم که کرمان که همه میگن به کرم بسته هست نه یعنی میهن کوستانی این کرمان که در, کر در کرمان هم هست در کرماشان هم هست من پیشنهاد میکنم که ایشون اون پجرش رو بخونه به زودی سایت سایتمون که باز بشه این تو سایت هست اگر نه از بنیاد نیشا بود بخونم باید براشو میفرستم بسی آقای یا خانم فهندج اگر درست خونده باشم نوشتن در دایره المعارف مرحوم مصاحب آمده کی و کیانیان عنوان شاهان نیمه شرقی ایران است خواهشمندم بیشتر توضیح دو با دوروت بر روان مرحوم شاد مصاحب خب بالاخره دانش پیشتر میره دیگه کی او قیاپ کی آخ شد در شاهنامه و البته در افسوده ها مرتب میبینیم که کیپاز پیشتر از شاهنام کی هم هست اما کی قواد در افساست کوی کباته یا کوی کباتنام یعنی پادشاهش شاه, شاه شاهان وقتی بود که در انجمن میستان ایران بزرگان ایران به فراخوانی زال که سپختار نیمروزان بود یک پادشاه انتخاب کردن که شاه شاهان محلی ایران بود و متعلق به همه ایران بود به شهر نبود بازم من درود می به روان دماشات بله. مسخم بله خیلی پیامک اومده دوستان خیلی یکیشون دوستان یکی از این دوستان بیستون کرماشان بله کرماشان بله کرماشان. آقای نعمت الله کاکاوندی نوشتن سلاموستان در مورد شاهنامه اینقدر خوب حرف می که جایی برای نقد و نظر باقی نگذاشتید استاد بزرگار آیا رستم و سهراب حقیقت دارد که میگن گن گرز رستم صد من و در نشته؟ در باره گرز رستم اومده گرزی گافسر سر نه چیزی دیگه اونو تو افیاد افصال رو بذاریم پیدا بعد می بینیم که این گرزی گافسر در حقیقت وقتی که ایرانیان تحت سرتم بابلیان بودن که به نام زحاک مشروع شد اونا گاب های ایرانی رو کشتن، موقعی که فلزگری در ایران آغاز شد با دوران و کابل اون وقت در حقیقت گرزی گاف درست کردند که در حقیقت انتقام کشتار گاب های ایرانی رو کشته باشه. ما مرتبا می‌بینیم که این گرزی گاف در دردست تورانیان هم هست یعنی اینکه که هموان با گرز و میاد برای چی برکه اونا هم آریایی هم فرزند فریزون هستن این گرز همتون در بین اقوام آریایی بود گرز صدمن به هیچ وجه نبوده گرز و بوده سر بود حالا این گاف سر, بوده. گاف, سر شبیه گاف, بوده یعنی گاف بوده یه سر شو... گاف بوده خود سر نه گورس فلزی شبیه سر گاف بوده. آها شبیه سر گاف فلزی. بله بله استاد یه سوالی کردم که هر حال جالبه. با سلامو خسته نباشید. ریشه تمام نجات های جهان به کجا و چه زمان می رسد؟ توالی... نجات های جهان به واجه گریه مریت هم یعنی پیدایش جهان در جهان که همراه با مرگه. یعنی زمانی در زمان نبوده هنو. بله. خیلی خیلی گذشته است. پیشن زمان. منطبا بعد دیگه محاجرت های پیش اومده. طوری شده که مثلا فرض کنید که اقوام آریویی. از جزیره سرندی پیه بگیریم که تقریبا پوستشون سیاه هست به خاطر اینکه که تابش آفتاب اونجا زیاده تا سوقت و نورمش که بریم بیریم خیلی سفید میشنه حتی موهاشون سفید میشه در جوانی سفیده برای چی برای که آفتاب کم اونجا وقتی که مهاجرت ها پیش میاد تغییر چهره و رفتار و این ها هست منطقه سره موی یه جهان واژه گایا مرتاس که فقط در فرهنگ ایرانه و نه در هیچ فرهنگی دیگه شما وقتی که به افسانه های آفرینش در هندوستان و در مصر و در یونان بینگرید و مات میمونید از اینکه این چطور بود انسان من یک بار گفتم اینا به خصوص چیزایی که یونانیان گفتن مثل یک آشفته دیوانه مست خواب دیده باشه درست است چیزایی که در دستگاه های فرنگی جهان کاری میکنن که در همه دانشگاه های جهان همون اسطوره های دروغ یونانی درس داده بشه و دانشجو نمره بگیر بیاد بالا یا چیزهایی که در هندوستان متاسفانه خیلی خیلی نادرخوره به زودی کتاب داستان ایران من میاد و اینا رو همه رو مقایسه کردم میبینیم که فرمان یزدان به فرمان یزدان جان پدیدار شد و جان ویژگی داره که با راه. این از بله. این زیبوتر چیز اینست بله استاد معمولا تو برنامه های بعد از هر مدت زمان مشخصی بهم. موسیقی میرن تا شنوندگان خسته نشن اما من مطمئنم که خسته که نمیشن هیچ دلشون میخواد برنامه طولانی تر هم باشه البته تلفنی برای شنیدن داریم دوستی زنگ زدن میشتبیم استاد بله و بعد دوباره لخدمتا خواهیم شب خوش استاد میخواستم بپرسم که چرا یونانیها به دولتشهرهای خودشون تورانی می این تورانی که یونانیها می گفتن به اون سرزمین توران پیوندی داره یا نه و اینکه ما امروز میدونیم یکی از قبیلههای پارسی به نام کامبوجیه اینها از غفغار مهاجرت کردند کوچ کردن تا دره سند رفتند انم میخاستم بپرسم که آیا این قم با کشور کامبوجی که امروز هست و همین نامروشه ارتباطی دارن یا نه خیل ممنون سپاس گزارم خشایار از نو شهر درود به نوشهر و درود به خشایر در داستان ایران معلوم میشه خود یونانیان میدونن که از یه جای ماجرت کردن به سرزمین فعیل اومدن اما نمیدونن از کجا اومدن و فقط این هست که دوزاره سال پیش اینا در اینجا ساکن شدن خوشبختانه این راز برشانام آشکاره و معلومه از کجا رفتن و همده از شما خواهش میکنم این چون سؤال خیلی مهمه درنگ بکنید ببینید که چرا اونا بازنامه توران رو دارن در از نزدیکی اون مرزها رفتن و در شاهنامه ما این روشنه در مورد کامبوچ هم این عقیده هست منطقه برخی میگن که وقتی که داریوش کودتا کرد و خاندان در حقیقت کوروشیان رو از میان برداشت گروهی از کروشیان تحت اونبان کمبوژیه کمبوژیه یعنی بوژیه یعنی رستگار کمبوژیه یعنی کسی که کامش رستگاره تا الان کسی این معنی رو نکرده بعد اینها گریختن رفتن جا ما آثاری از همه بین مسائل فرهنگی در آسیای جنوب شرقی با ایران می‌بینیم. نه تنها در کمبوژ بلکه در بقیه کشورها با من موقع سفر با استرالیا کردم این آثار رو در بین بومیان استرالیا با ایران هم دیدم و اینا در در حقیقت دفتر دوم داستان مطرح میشه جندو سازندگان پنجرههای روز محتاب دو تا پرسش دارم نخست که در نامه کیکآووس به جهان پهلوان رستم چرا سخن با نام خدا آغاز نشده و میگه نخست آفرین کرد بر پهلوان که بیدار دل باش و روشن روان و دوم که در لشکرکشی ذال بهسوی افراسیا معنی واژه میل در رجی که میخونم چی هستش و, و آیا این واژه با واژه مایل در انگلیسی ارتباطی داره بزد مهره بر جام بر پشت پیل از آن اواس ها چند میل سپاسگزارم بهرام هستم از ایلام تماس میگیرم خدا نگه باشه درود به ایران درود به بهرام البته خصوصستون خوبه درباره میل من پیش ده. در همین برنامه صحبت کردم در دیوان برید یعنی میل در حقیقت جایی بود که بعدن شد مناره و جلگاه آتشه، فکر هم که این تلفون پیشتر زده شده که این پرسشی کردن، بعدن ایرانیان همواره با نام خدا به یاری خدا آغاز میکردن، ممکن نبوده که. منطور میکنی نخوص آفرین کرد بر پهلوان، یعنی بعد از نام خدا این بر پهلوان آ... آفرین خوند. دارم خدمت استاد محترم و مجری برنامه و همه عوامل برنامه خواستم ببینم اسفندیار بعد از اینکه رستم اسفندیار رو کشت چون م هم ماو تنها ایشون بود من شنیدم که رستم ضعیف میشه از این ببد قدرتش دچار ضعف میشه و دیگه اینکه خواستم ببینم ترتیب رویدادها از زمان رستم اگه میشه برامون بگم و دیگه اینکه سیاوو شخصیت مثبتی داشته یا منفی ممنونم شما اگر روز رمز شانومه رو که در برنامه که که میشه می بررسی بکنیم میبینیم که دو استان ایران یعنی استانی که با نام اسفندیار شناخته میشه در غرب بوده و استانی که با نام رستم شناخته میشه در شرق بوده اینا با هم دیگه پرخاش داشتن که در یکی از گفتارها میگه که دو پهلو برای از رنجوکین یعنی دو, دو استان می‌بینید نگوست دو پهلوان یعنی سردار عثمان میگه دو پهلوان دو گوشه ایران یعنی سیستانیان و اسفندیاریان که در داستان ایران خواهد اومد اینها با هم دیگه نبرد میکنن. پس از اون دیگه سیستان آغاز زحفش میشه دیگه. دیگه بعد از اون ضعیف بوده اما هیچ وقت هم سیستان اون اندازه ضعیف نبوده برای که شما میدونید که در همین رویدادهای اخیر وقتی که انگلستان وارد و در هندستون در حقیقت استعمار می کرد و اونا چند میلیون هندی روپی آزار و فرمانبه رو در حقیقت به خدمت گرفت اونا نظرشون به سیستان بود می که سیستان رو نیمه کردن در این بخشپندی هایی که کردن سیستان نیمه کردن تا نیروش کم بشه حتی در این سفرها که میلیون ایسا کمپانی هند شرقی اومد به از هندوستان اومد به طرف اروپا بره چیز هاری انداختم بین مردم ویروس هاری و حتی سگا و گوگاه بیابون اینها برای که میترسیدن که من باز این فرزندان رستم باز برخیزن و سیستان تا پیشتر از اینکه اینطور دوچار کم آبی بشه همیشه مردخیز بوده همیشه جایی بوده که اصلا ما وقتی که درس مخوندیم تو کتابمون بود که سیستان انبار قله ایرانه اما بعد از اون جنگ دو پهلم ازش یاد میشه سیستانی, سیستانی زریف میشه خود رستن چی میشه؟ رستن نماد قدرت سیستانه هم باره وقت چطور شخصیت منفی میتونه داشته باشه؟ اینقدر پاک و راست نه من با پدر بیوفایی کنم، نه با اخرمن آشنایی کنم. وقتی که یک جوانی با یک کسی که کامه بعد از اون میخواد اینطور پاسخ میده و بعد اینکه همه کارش راستی بوده وقتی کسی ها کشته میشه میبینیم که فردوسی شمردم هشت جا از خودش ابیاتی را آورده. مثلا یکی در سوق فرزند خودش. یکی در اون نامای رستم فراخزاد. چند جا هشت جا آورده و یکی از اون جا که خودش، از خودش شعر آورده این چندبیتی که در سوگ سیاوش گفته، چپ و هر ترس رو به تابم همی سر و پای گیتی نیابم همی یکی بد کند نیک پیش آوردش جهان بنده و بخت خیش آوردش. یکی جز بینی نیکی زمین نفس زمانه مرو را همی بشکرد این گفتار فردوسی در بار شهر وقت نماد آزادیگی پاکی رو براسته بر بود سلام اصداد جنیدی شهر شیل در کجای ایران قرار گرفته و گواد در کجای ایران به دنیا اومده در بر شما درقدر شهر شیز در خوربران یعنی آزربایجان بود شیزیگان شیشیگان شیشیگان هم گفتن که الان دیگه حتما ویرانه شده اونتا چشم کابوش های آینده داره موقعی که با دیدگاه ایرانی کابوش بشه نه با دیدگاه در هرقدر اروپایی و که غبادم هم همطور که پیشترم هم از کردم هنگام پیدایی یک حکومت فدرال یعنی مردم سالاره که شاهان محلی ایران یک شاه رو انتخاب کردند، متعلق به همه ایران. با بر شما. و باستفاس از برنامه خوب استاد در این رادیو. پرسشی داشتم از استاد در خصوص تورانیان گویا تورانیان که حال از فرزندان فریدون و در نتیجه از بستگان ما ایرانیان و پارسی ها هستند به نوع اموزادگان ما محسوب میشوند به ای با اونا برخورد شده که ما تلقی یک افراد کاملا ای از اونا داریم و این مطلب تا اونجا پیشرفته که برخی افراد برداشتهای سو و استفاده های از این مطلب میکنن خواستم استاد توضیح بدن که آیا اساسا این درسته که ما تورانیانو کاملا بیگانه از خودمون بدونیم یا نه همینطوره و اونا هم به نوع ایرانی و فرزندان فریدون محسوب می شون. در این صورت جا داره اصلافی بزرگی مثل است تأنی خصوص آگاهی و اطلاع کنند که ما بدونیم تورانیان هم به نوعی ایرانی بودند و بیگانه نیست. پس پس بدرود حمید پارسی از تهران. درود بر حمید فارسی من فکر کردم به این تلفن هفته پیش زده شده بود برای من همه اکنون در باره صحبت کردم. که در رواب اومده تویریه یعنی پسرم در ها تویری یعنی پسرم ییه تفندشی این نسبت وا پسرم ما میشناختیم که اینا پسرممون ما بودم و بعد انبوه نامهایی که در سوران هست همه ایرانیه می فرنگیز فرانگیز خود افراسیاب ها درسی منیشه هومان بارمان ب ایران ریسه این رو به همه, همه اینا نام ها ایرانیه ایرانی بله اینا اینا فرزندان فریدون بودن مونتا خوب چون زیاد حمله میکردن در کشتار میکردن اینجا دیگه بالاخره این جنگ ها بین ایران و توران بود اینو بشومز کنم که جنگ ها که به از ایران هیچ‌وقت به طرف توران نمی‌رفتن تورانی‌ها نمی‌اومدن مونتا در زمانی که خسرو چرا این کار شد و هر بارم که میرفتن به سرما گیر میکردن بعضا ما اینا رو قایم دید ایرانیان که می‌رفتن بیشتر با شکست رو برمی‌شدن که اونجا سرده هوا سرده تا اینکه بالاخره در یک حادثه خیلی بزرگ که شما در ایران از بین رفت تورانم هم از بین رفت, رفت، دیگه بعدها کسانی به نام هیونان جایگاه اینا رو گرفتن که در حقیقت میانجی بودن بین سرزمین های ایرانی و سرزمین های بالای سیبری بعد اینا پسرمون ما بودن منطقه با نورد و جنگ میمدند بله سفاظ گذارم استاد ساعت 22 و 42 دقیقه و 20 ثانیه است از شبکه فرهنگ با برنامه پنجره های روبه محتاب در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت جناب آقای دکتر فریدون جنیدی استاد خیلی پیامک اومده من واقعا عذرخواهی خواهی میکنم پوزش می ها. بهتر از عذر. پوزش میخوام پوزش میخوام میتلبه عربی شد پوزش از و حال شنوندگان عزیزی که خیلی پیامک دادن مثلا الان یکیش رو بریم منه با سلام خدمت جناب استاد جنیدی استاد جنیدی، لطفاً در خصوص انواع زره و لباس جنگی و کلاخود در شاهنامه توضیح دهید و تفاوت آنها را ذکر کنید، این بماند. با, با تشکر از برنامه خوبتان، حامد تاهری از تالخونچه سپاهان، همون سپاهان که شهر زیبا و تاریخی تالخونچه زادگاه جناب صاحب ابن عبادیان عباد عباد یعنی. برت مشدد خونده میشه زادگاه جناب یک بار دیگه شاهدی سوال مطرحه نه یک بار دیگه هم ایشون از اونجا بر من وزیر دین پرور آله بویه دیگه من همه این کار رو کردم تمام ابزار جنگ بله نه رو همه رو در من فقط خواستم دار... نمونه ای باشه برای ایشون شما نامم آوردم می اونجا مراجع مورز... کنن تمام این ابزار حالات جنگ رو اونجا چاردم حتی نقشه کشیدیم بله یکی یک پیامک اومده که بله مخاطبش بنده هستم استاد آقای یوسف میاد دو تی که هفته قبل یعنی دو سه هفته قبل در باره لف و نشر به روز نبردان یا لجمن خاندید در تصیح خالق مطلق بری و موسکو الهاقیست و در نسخه قدیمی فلورانس لندن و استانبول نیست خب اینو بندم از بله در اثبات حرف شما ولی من این دو بیتو خیلی استاد بیسیش دارم هر جا میخوام نمونه ای از لفوناش مرتب بگم این دو بیتو میخوام خیلی استادانه شروع شد خیلی خب حالا باقول شما نمیتونی یک نفر هم گرزو هم کماندو یکی از دوستان به مضا میگفت جموم چطور میتونستی این همه یه چی سریالی پخش میکردن خب, خب همه چی بهش آویژن بود من که این جور چیزا رو نمبینم با تلویزیونم ندارم برده. ولی آیین جنگ کارزارو همه رو در پیش گفتاره من نوشتم نشون میده که شیوه به کار بردن هر کدوم از اینا که جدا جدا بوده چه موقع در اونجا داشت آیا آذری ها از تیره های آریایی بودن آزربجان قبل گاه آ... ایران بود آجان باید گفت زبان آذی ترکی نه از حالا باید گفت پس از اینکه وارد شدن که تیره های ترکی وارد شدن و نمیدونستن فارسی سوکنن کم کم مردم خشغ آزربایجان به اونا همراه شدن وگرنه ما یک یکی از بزرگترین شاهکارهای فرهنگی مون چیزیه به نام سفینه تبریز که خیلی عظیم همش به زبان فارسی نوشته در تبریز در سده 7 و ما یک کتابی داریم نوشته مولانا روحی انرجانی انرجان تبریز در سده 11 هم که زبان مردم تبریز نوشه گونه ای از زبانی سوین پهلوی نزدیکه و به مثلا پهلوی و فارسی خیلی خیلی زبان شیرینیه من اون رو منچه کردم در کارهای یک کار عظیمیم در دست آقای استاد فیروز منصوری هست که به صورت عظیمتر این کار با امید خدا در سالهای آینده به دست ایرانیان میرسه از هم بهتر آزربایجانیان که بدونیم که ایرانی مطلق هستند هم از چهرو اندام هم از گفتار هم از فرهنگ هم از های زندگی و اینها به هیچ وجه زردپوست نیستند چون زردپوست پاهای کوتاه و کشات و چشمای کج دارن و ریش ندارن و این زیبایی که در چهره آذربایجانیان چه مرد چه زن در هر شهری ویژه اردویل جدا تبریز جدا ارمیه جدا این زیبایی مطلق که در چهره اینها هست آریایی آریئس استاد یه پیامک دیگه با سلام درباره سام توضیحی بدهید با توجه به اینکه سام پسر نوح بوده و نجاد سامی از آنجا نشد اون طور که ما میگیم که فریدون یعنی هنگام سه بحر شدن آریویان که گروه به قر رفتن به نام سلم البته در عویس و سعیری گروه به شغ رفتن به نام تور و گروه در ایران موندن به نام ایراج این در حقیقت در افتانه های سامی هم باقی مونده که نوح رو میگن که تا پسر داشت. هم. هام و سام و یافت. هام همونه که در زبان انگلیسی الان به معنی خانه است. هام. و در بسیاری از نام ایرانی به نام همدان و هم اینا هنوز وجود داره. یعنی خانه. یعنی کسانی که در خانه موندن. سام اون کسانی هستن که به طرف شهر رفتن سع... سعیری و سرم شد و سلم شد و یافته هم کسانی بودن که به آسیای مرکزی رفتن به جای توران این تقسیم بندی اینطوریه نه سامی که در شاهنامه هست به اون سامی اشتباهات نداره او اونا در حقیقت حالا معرف شده این نام هست استاد نظر شما رو پرسیدن در مورد شاهنامه تنسیه شده یه دکتر جلال خالقی مطلق خالقی مطلق بزرگترین کار رو درباره گرداوری شوانه کرده و 36 سال از عمر خودش رو برای این کار گذاشته خیلی خیلی کار عظیمی است خیلی خیلی شوخی ستایش من بارها و بارها در هم در گفتارها و هم در پیش گفتارها بر شوانه خودم ازش ستایش کردم و همی که در داخلش وانامه گاه گاه از او یاد کردم و ستایش کردم مونتا باید بدونیم که کار خالقی مطلق گرداوری بود یک کار عظیم بود که گرداوری بود ویرایش نبود ویرایش رو خداوند خواست که من انجام بدم با درود خدمت استاد جنیدی و در کاران اصطاد اگه ممکن هست نام روزهای ایرانی رو به خسرو پرهادی زدن نام نخست اورماد نام دوم بهمن نام سفم روز سوم هشابه هیشتا یعنی اردبهش که بر تقییم راستی و پاکی و زیبایی باشه نام روز چهارم شهری برخ شهر شروعی در در عبستود یعنی شاهی آرمانی یعنی شاهی خداوند بر جهان اینا همه صفات خداونده پنجم سپند آرمیتی که محالم روزونی سپند آرمات نماد زمینه مادر زمین و خرداد در عبستود و تاتا یعنی روب کمال رسایی یعنی زندگی در جهان روب کمال و رسایی داره مرتبا روب کمال میره امرتاته یعنی بیمرگی بیمرگی و جاوه در در حقیقت آفرینش و دهش خداوند همطور نمه ها تا سی روز آلا من هفت روز چه گفتم بخوام سیف روز تا رو بگم زیاد میشه در جلسه تا آینده و از بقیه شد افتاد شما دائرت و المعارف کاملید بیاری هستم این اطلاعاتی که شما دارید بیاری هستم دوستی نوشتم که تمام هفته رو منتظرم تا وسطچونی دست واقع میکنن چندین پیامک به این شکل اومده که من یه فاکتور گرفتم و کلانی رو خدمتتون. همه اونها درست جان من فدای ایران و ایرانیانه و این کسانی که اینطور محبت می‌ورزند. خب موسیقی میشنویم باز در خدمتتون برای دو تا تلفن دوتا تا تلفن میشنویم دوستان. وقت فاسق منی داد ولی نفرموندن چی چیز در کجای آزرباج جنگ قرار گرفته حالا از بین زفتیان منده کار نزم و قباد درسته سرسلسله دودمان ساسان پادشاو همه ایران بود در کجا به دنیا آمد من پرسیدم اینو لطف کنم بفرمایم چیز <متصفح> احتمالا نزدیکی در چیه چه ای چستای امستایی چیچسته پهلویی که امروز اورمیه خونده میشه نزدیکی اونجا بوده و که قباد شخص نبوده عزیز من من ارز کردم است که در اون شاهی آرمانی شاهی پادشاهی تیره ها و دودمان ها پدیدار میشه که پادشاهان هر نقطه از کشور در انجمن مئیستان او رو انتخاب میکنن یعنی که قباد از همه جای ایرانه متعلق به همه جای ایرانه و برای همه جای ایران خدمت که پادشاه در به صورت یک شخص که در شانه اومده بهترین پادشاه بوده. در. سواری داشتم میخوام خزان که حریم یعنی چه؟ و کلمه ریم بیانگر چه چیزیه؟ جایگاه، جا مکان، زمان چی چیزیه؟ متشکرم از این برنامه و برای استاد عزیزم عمره به درازای آفتاب خواهانم خیدروکش شاد باشید، پیروز باشید من خاک ایرانم زیر پای ایرانیان هستم آفتاب درخشنگو از اینی که من بتونم عمری به اون درازنا داشته باشم هر واژه تازیه از, جای از حرمت گرفته میشه جایی مکانی که باید اونجا بهش احترام گذاشت مثل حرم و بهترام و ریم باشه فارسی یعنی پلیدی ریمگن یعنی چیزی که پلید باشه ریمن یعنی پلید همین هر سینا از ریم گرفته شده پلیدی ساعت 22.53 دقیقه با 47 ثانیه است و کم کم مجال ما داره به پایان میرسه اجازه میخوام از جناب اصداد که عوامل برنامه رو معرفی کنم عزیزانی که تلاش کردن تا این برنامه با صدای نازنین شما خوش به گوش شنوندگان فرقیش آن که بلند به فرمایید بیتر از صدای نازنین خب خوشدارین نازن... آخه واقعا بار معنایی که تو نازنین هست خوشدار دهنده به وای این خداوند خواست که آوای فردوسی از حنجره‌ی من بیرون بیاد خوشدار دهنده است بله شعر نازنین به صدای نازنین شما به گوش ما رسید خیلی شنیدنی نیست بله تهیه کننده برنامه جناب آقای محمد رضا حاجی‌دری صدا بردار آقایان در حقیقت صدا برداران آقایان علی چاهدی نورالله Heidari همه هنگی برنامه آقای سهرابه ستایشمنش، همه هنگی پخش آقایان عبالغاسم مذاهری و مهدی ابراهیمی، ارتباطات آقایان حمید فروزنده، مرتضا حسینی و بنده هم سعید یوسفنیا و کچی که شما استاد دسته دسته این توفیق نظیبم شد و با تشکر از همکاران محترم در وایدهای حراست، نودار، ترابری، خدمات و همه دوستانی که حال به ما یاری رسوندند. تا برنامه دیگر و پنجره های رو به محتابی دیگر خدایتان نگهدار استاد خدا نگهدار رو شاب باشید.